حوض بالله همه الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله اللہ محمد و علیه تاهرین اللهم کن لولیی که الهجت من الحسن صلواتو که علیه و في آبائه فی ها و هسا و فی الساعة, الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و و عینا حتیاو تسكنه او ارده کته و, و عاوت متائه فيها طويله. صلّ الله علی محمد و عليه الطاهرین. <تصفح> خب بحثی که ما پیشنهاد شده بود بحث مدیریت فرهنگی بود. اول از اینکه داخل او مباحثی که ما به نظر خدا مناب مهمتر هستند. یه سر مباحث از نظر خودم دست دوم رو مطرح میکنم بعد برسیم با مماسیم مطلب اول اینکه در بحث مدیریت فرهنگی ببینید مدیریت یعنی چی مدیریت اگر نخوام یک معنای لغوی دقیق کلاسیک به کار ببرم پرهیز دارم اینطوری صحبت کنم یه <تصفيق> مسئال خودمونی میزنم این این مدیریت با مسئال من این مسئال معمولا برای دوستامی میزنم خب دیگه معمول رو میخوام بگم با اسطلاحشو بخوام بگم خیلی حالا به درد کارمانه بخوام خدمت شما حضر کنم اینکه من بعد دوستان اینطوری میگم بگم که شما اگه بخواید ببرید توی یه گلستون توی یه گلستون گل بچینید تو گل میتونید توی یک روز بچینید مثلا فرض بفرما ممکن این فرض بگه من میتونم 500 تا گل بچینم توی یک روز حالاگه ده نفر با تو همراه بشن هر کدومشون 500 تا بچینه ها خیلی زیاد میشه. دیگه شما میتونید 5000 تا گل بچینید اگه جمعا 10 تا بشید خیلی گل میشه خیلی گلاب میتونید بگیرید حالا وقتی که میخواید اینها رو قانع کنی برن گل بچینن نباید قانع بشن که بیان گل بچینن باید باشون صحبت بکنی بگی گل چیدن یعنی چه فوایدی داره انگیزه هایی که خودت داری رو به اونا منتقل کنی اونها قبول میکنن که بیان گل بچینن قانع شدن شروع میکنن گل چیدن وسط رایی که خار میره تو دستش داد و فریاد اینم شد درد سر اینم گله که خار داره میزنه گاراژ شما نمیخوای بری صحبت کنی بهش بگی بابا خب معلومه هر کاری خار داره کنکورم نمیخوای بری شرکت بکن چند شب نباید بخوابی برو بری باهاش حرف بزنی که این مشکلات براش رقیق بشن اگه دونفسه رکاب هم دعواشون شد کمر ورته یه قسم من من گلا اگه این دو تا تو تشکیلات با هم دعواشون شد شما نباید بری این حل اختلاف بکنی میری با این حرف میزنی؟ میری با این حرف میزنی؟ اگر به درد میخورن که قانه بشن، قانه‌شون میکنی، حل‌شون می‌کنی، صلح و صفا بهشون میدی بُد معنوی‌شون رو بالا میبری که بابا این حرفا چیه؟ حالا یه خورده ورتا، یه خورده ورتا. اگه دیدی خیلی توام خورده قد نمی‌کنیش، بیرو. دیگه تو دیگه. مرت اثرادری کار میکنی، یکی بیوچه پیچ‌پچ می‌کنه، می‌دونی چیه؟ گولا رو می‌خواد بچینه، تو اسم خودش می‌خواد تمامش کنه. ماره کرده نوکر خودش انگام مریدشی مرید مرادیه ما آنو ماره کرده نوکر خودش علی که انداختی جلو باید شیر شیر بر جلو انداختت جلو آخر کار هم میگه بله مسجد ما 500 تا گل چیده پنگ هزار تا گل چیده همونو کرده نوکر آخر کار به اسم خودش تمام میکنه این آدمی که داره پچ پچ میکنه نباید بری صفش کنی یا ذهنشو صاف کن توترس خونسا کنی این آدمی که داره گل میچین مشکل خانوادگی پیدا کرده شما اگه توجه به مشکل خانوادگی رو نکنی همینطور دیگه آقا گل بچینید یلا گل بچینید این گل میزنه هماتش پرته این هر روز مشکل خانوادگی داره شما توجه به مشکل خانوادگیش نداری این نمیتونه گل بچینه آقا اصلا افسرده شده کی دفعه بیرمق میشه آخرش چی؟ به چه درد میخواره؟ حد چی دارم مثال میزنم واقعیت های خارجی ها من دارم توی این مثال میگون جونمشونا ببینید این مدیر چند همه تنحریف باید باشه؟ بحث سیاسی باید بتونه بکنه بحث روانی باید بکنه مشکل خانواده اینو باید بتونه حل بکنه دعوا باید بتونه حل بکنه قدرت استدلال آوردن باید داشته باشه قدرت اقناع کردن باید داشته باشه از خصوصیات یک مدیر چه بچه خوب باید قدرت اقناع داشته باشه این کار رو بکنه چی گفتم من میگم این شد الله من میگم من میگم شود رسول آخرین نهایت استدلالش که من میگم این کار بده چی میگه من میگم من میگم فرسول الله هیچ کسی رو نمیتونه با خودش همراه کنه آدم خیلی خوبیه اقناه نمیتونه کسی رو بکنه بیان گفتاری نداره گل که میچینه یه چند تاشو میذاره توی این چیزه مال گل یه چند تاشو میذاره توی جیب خودش ای, ای ای ای استفاده شخصی هست من آفه داره میکنه ای کلها میذاره توی جیب خودش یکم گول ما رو گول میذاره میکنه توی کیسه پس این استفاده شخصی داره میکنه. این شروع میشه اختلاف. این آدم خودش باید استفاده شخصی نکنه تا بتونه به اهدافش برسه. اگر استفاده شخصی کرد هیچ یهو لزما اگر این مدیر بعضی از مباحات را رفت انجام داد، ما باقی میونه حرام ها رو انجام میده. این مسئوله اگر بعضی از مباحات رو انجام داد، مباحات ها ما باقی میونه حرام ها رو انجام میده. لذا این مدیر باید مباحات رو بر خودش حرام کنه. به جز مباحات نباید انجام بده. چه قرصه واره این ماشینه میشی؟ چه قرصه واره این موتور میشی؟ زیر سوال میری ولو که بینی بنالا منظور بدی هم نداری. زیر سوال تا میخوای حسر و خسر قانع بکنی، تشکیلات چیده. این تاریخ و تقوای مرونیز داره یا نداره، تا بخوای بگیریش، بهش بگی تو سوئز زام بردی، فکر بد کردی. او ده نفر راخته گفته. بهش توضیح بوده قضیه این نبوده یه ای چیز دیگه بوده این ده نفره رفته گفته خبر داری به کسی نگو به کسی نگو تو خدا به کسی نگو پدرمو در میارم به کسی نگیر به کسی نگیر ها برو همه رو برده اصلا تقل نداره ببینید شد مزیری یک مثال محسوس قلوم سلوم بشم انداختم این واقعیت خارجی کارهای تشکیلتیه گل اگه خوب عمل میچینیم چیکار میکنیم؟ گل میزنیم تو در خودمون ها گل میزنیم کنم زیره تا خب این یه تعریف اجمالی واسه اگر شما گفتن که مدیریت چیه؟ گل چیدن مثالشو گفتم که تو زهنتون ببونه حالا من برم تو معمه لغوی چیه معمه اصطلاحی چیه اصل ماجره نفله میشه هیچ هم گیره به نظر من جوی. یعنی من تجربه هم اینجوری که حالا اینو می... حالا یعنی تعریف بکنیم دیگه با مثال تعریف ها میگیره مدیره دوره پشت رو میبینه دوران پشت و کار رو میبینه میتونه پیشبیدی بکنه اینا معنی لغا داشته نه دوره پدبیره دبره قبول دوبار دوبار یعنی چی؟ یعنی پشت این پشت رو میبینه پشت رو که میبینه میبینه پیشبینی بکنه پشت پرده چیه حالی یه خرد قلومبش بکنم بحث رو یه دوستا دوستان بعض جا عرض کردن الالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس لبس به معنای شک به معنای شبه نه لبس به معنای پشیدن خب میگه اگر یک کسی آلمه به زمانش باشه شبهات بر او حجوم نمیارم این هزبه توی جوادی آمالی استدلال میکرده ولی دیداری خدمتشون داشته ایشون فرمود عکس نقیز این قضیه چیه این قضیه رو اکس نقیز کنید العالم و به زمان اصل قضیه العالم و به زمانه لا تهجم علیه اللبابست من حجم علیه لبابست لیس با عالم، درسته؟ چیزی که لبابست و شبهات برش حجوم بیارن، او اصلا عالم نیست. آدمی که جیجه، این عالم نیست. نمیدونی چی کار باید بکنه. فیلم مار ملکو ای باهیلا، ای ای عالم. گیت شد، بیرون گیت شد، گیت که میشه عالم، نباید گیت بشه. باید میدونه با چیکار بکنه ممکن است تو وحمد کنه آدم که معصوم که نیست که بی جناواز بشه پشت مساله رو میبینید امروز بهت گفتم چه امتحان منم بخواهم... میگم پشت ماجرا رو ببینم میخوام ترجمه کنم ای قسم... این قسمت را گفتم چه این ترجمه کنم پیش بینی میکنه مسائل رو حدش قضیه نمیشه مدیر. مدیر هم تشکیچیه خودت تشکیچی داره شدید شدیدتر بعد ایشون اضافه میکردن که الزمان و, و مکان جز اجتهاده از عناصر اشتراکی حضرت امام فرمود. حالا ببینید. بعد ایشون می‌فرمودن ما روایت داریم. این شاهده بسمن برای همین تیکه بودا؟ مدیریت، می‌خوام استیکرات رو که الان می‌خوام بگم. حضرت اجازه عملی فرمودند که روایت داره که زمان چیست؟ زمان آن است. که شما اینا جوابی می‌فرمودن. زمان آن است که شما بتونید از پشت درهای بسته بذین فکر حاکم رو بخوید. حاکم چه فکری میکنه؟ آمریکا چیکار می‌خواد الان بکنه؟ این تحلیل سیاسی. این همینه تحلیل سیاسی. نه سیاسی کاری، پوش پوش کاری، تهمت زدن، بحث زدن. این مش سیاسی کاری تحلیل داشته باش. یه فرمودن فرمود روایت داریم که زمان یعنی این که بتونی از پشت درهای وست فکر حاکم رو بخونی روایات دیگه داریم بازی شفر بودن که لتونی فکرش رو عوض کنی روش تاثیر بزنی دورش بزنی آقای هاشوی میاد تو خطبا نمازومه یه چیزی میگه در ایت آمریکا امریکا ساخت میشه قضیه مکفاله رو مطرح میکنه یه پاک میکنه او باست یه فنگوین هم کلش میکنن کار تم سر کارشون میذاره این میش میگن مدبر دبر رو میبینه پشت قضیه رو میبینه پشت پرده پشت درهای بسته فکر حاکم رو میخونه عوضش میکنه یه کارش میکنه فکر عوض میشه تدبیری میکنه این میشه مدیر. حالا یه با شما میرید توی یک اشل بازرگ جهانی، کشوری، استانی، شهری، مسجدی خانوادگی لذا شما تو بحث حکمت بحث عملی و حفا وقتی میرسید میشه چی؟ سیاست و مدون بعد سیاست خانواده سیاست خانواده تدبیر دبره تدبیر خانواده بتونید خونواده رو اداره کن این خونواده خود چون نمیتونه اداره کنه دفتر خود چون نمیتونه اداره کنه میخواد بره رهبرมشه سطسisin یوم دون رهبر بشه تو دفتر خودش نفوذ میکنن اینو حضرت امام او فرد به بعضی دفتر بیت خودشون رو نمیتونن اداره کنن تو بیتشون نفوذ میکنن این چطوری میخواد بره جهان رو اداره بکنن قدرت تدبیر نداره. خانواده خودش مسجد میرزنش تو هم چطوری طوری میخواد بره تدویر بکنه استان شهر کشور جهان خیال پردازه خیال پردازی خراحته تو خیال پردازی رهبره ادا رهبران هم خودش میگیره اما هیچی سرشته میشه خودمونه دارم میگم آه. بزرگار رو نمیگم خودمونه دارم میگم ما بعضا تو خیالان تو خیال... خیالان خودمون رهبریم دستی تکو میدی برای کی؟ برای هیچ. برای پوچ. اما خونه خودمون رو نمیتونیم تغییر کنیم، برادر خودمون رو نمیتونیم تغییر کنیم، مسجد خودمون رو نمیتونیم تغییر کنیم. اینجوری. بالاتر اصلا خودمون رو نمیتونیم تغییر کنیم. گولمون میزنه خودمون. خودمون خودمون رو گول میزنه. حتماً گفتم مزارع و تشیروردن مسجد، منظورم تابرا. خیلی خوب. بعد قبل از گبرن اسمه ها ازشون کرد که ما چه کار میکنیم که بتونیم شیطون بتونیم در شیطون مسلط بشه بشون فرموند ما شیطون رو گولش میزنیم سرکارشون داریم گولش میزنیم شیطون رو گولش میزن حالا چه شکلی چه جوری آیات اینو معیده این, نک... این نکید شیطان کانه دعیف ها در این حال که عدو عدو در تحلیلش بزرگان میگن که اقرب پا تو بزر روش له میشه همین اقرب اگر برد مسلط شد میکشه آب کشیر تو رو هر میده اگر از یک روزن نفوستت قرخز میکنه. ضعیفه پا تو بزر روش میشه چیزی نیست اما اگر بر تو مسلط شد چیش میکنی خودتو مطرح کنی شاید خود خودم اطلاع کنم به هزار تا به برو سخرنی بکنی، مقاله قلی بنویسی، میمدلم صحبتی بکنی. یه, یه چیز عالی چی؟ به یه بعان خود مطرح میخوای بکنی. یه سوال علکی چی بپرسه؟ توی اخلاق کلاس هست بخونید آدم اطال از استاد سوال بپرسه میخوادی خودم اطلاع کنم. نه که اگه سال که سال در سال لاپرسه، میخوام بگم که کسی هست سوال بپرسه نیتش ولی که سال, سآل خوبی باشه. نیتش تو سآل اینه که خودش رو کنه دیدید خودش بر خودش مسلط نیست خودش خودش رو گول میزنه نمیتونه خودش رو جمع کنه میخواد بر تشکیلات جمع بکنه، سفتال سیاه نمیتونه تشکیلات جمع بکنه. اول خودش قم شبیان بکن قم لیله نسبه اول قسمه بعد میگه برو اشیره بعد میگه برو بردم رو من تو خودم گیر کردم بحث مرحلی بعدی نمی اصلا نه که میگم هیچ کار نمیتونه بکنه میتونه بر سازم اجادی خلق را بندازه اما خود این آدم و این تشکیلات یک مشکل و درد سریعن نفرات بعدی با این مشکل رو حلش کنن ما این طور نیست که قلم به دست نداریم ما قلم به دست با تقوا نداریم یعنی نداریم لذا آقا قلم میزنه نفرات بعدی با مشکلات قلمی اینو حلش کنه میره تشکیلات را بندازه به جایی که بره تشکیل رو گروه ها رو میندازه نفرات بعدی با بره سافکاری کنه خطاهای آقا رو یعنی کاری میکنه بند و بسات را میندازه جزم میکنه تو نیست که اینا نشده و همه کار فازو مجاهد خلق هم میتونی کار بکنی مؤافره میتونی کار بکنی اینا که شدنیه چیزی توش در نمیاد یه یا یا مش زختی تحویل جامعه میده یه مش های شبهنات تحویل میده یه مش مورید مراد تحویل میده یه مش آدم انحراف سیاسی تحویل میده حرفی نفرات و بعدی برام مشکلات این آقا رو حل کنه دست به سیاست که میزنه برکت نداره هر کار این آدم میکنه برکت نداره دیدید میگن اگر که نقل میکنه من نیدر می تو اگر ناخونه یه آدم بی‌نماز تو پشت خونتون باشه برکت از موناتون میره این ناخونه هست که میگیرن؟ این ناخونه که تو پشت توش تو باشی شنیدم نهیدم یه بند خدایی که با رواد من اونسفود رو نقل میکن خونه برکتش نکل چطور ما رو برحضر میکنن اینا برحضر کردنه حالا این آدم نمیخواد ناخنش بیفته مسئول تشکیلات میخواد بشه چی توش در میاد؟ مسئولی گروه چی توش در میاد؟ مسئولی پایگاز هیدر اون مسئله این مسئول پایگاه در میاد هر به مسئله منم منمش در میاد صاف نمیگه منم ها اینو پوستنده نمی که آدم دلوش موزه بگیره نمیگه منم یه طور خودشو تخ میکنه همه ساکتن صرفه میکنه که نگاه شکر شکر نمی کنم ها خارجی که دارم میگم چرا من مراجعه میشه میدونم ها که صرفه کنم خودم اون خودم داره که یه صرفه میکنه. نمی بخشید میشه وارد دیگه پلیز رپیتی وارد تکرار کنید ببین چی گفتید؟ آها، تو چرا که همه میگن آقای جزه میگه آقای اجازه. با همه فرق میکنه. یه کاری میکنه، با همه فرق میکنه. تو چش میخوره. مریضه. مریضه. این تدبیر داره؟ این دبر رو میفهمه چیه؟ مدیریت داره. نه خیلی مدیریت به این معنایی که ما میگیم نه، پس چی, چی داره؟ خب خو این سی آدم دور خودش جمع بکنه بله این شیطنت داره اینا که گل نمیچینن نه میچینن یعنی گل خزره میچینن مشکل داره از تشکیلاتش بوی تأفن بلند میشه بوی انحراف داره اما همه شست و رفته اگه مسلمونن التماس دعایی اگر غیر مسلمونن کرواتی اتکلون مردم رو تو ابوغارک میخوشن غیر مسلماناش مسلماناش هم که آدمهای منحرف مثل خوارج و فرقان علاخ چه روحانی بشه چه غیر مدیریت پس شد یک سیاست مداری برای رسیدن به یک هدف و خدمت شما عرض کنم که مسئالشم زدم باید بتونه تدبیر کنه زمان شناسی بکنه زمان رو بفهمه این بچه ها رو بفهمه عدویرش باید خوب باشه در مسائل فرهنگی خب پس اول با بباسه فرهنگی بفهمه یعنی چه اگر میخواد مد مدیر بکنه مدیریت بکنه در یک بحث ساختمونی او نواد بفهمه ساختمونی یعنی چه یعنی اصلا نمیدونه ساختمون چیه چه شکلیه بگن کسی بردن کلنگی ساختمونی رو بزنه نه از بس کار ساختمونی کردون بسه عبر پایین اینا دوتا کلنگ علا که میزنم فیلم فیلم یه فیلم ازشون بگیرند این طرف خیلی کار ساختمونی در کار کرده بود این غرب گودش کرد تا به پی برسه حالا واید یک کسی آخه واید چیزی ساختمونی بدونه که برای تدبیر مواس ساختمونی بکنه حالا که میخواد بره در مواس فرهنگی کار بکنه نباید مواس فرهنگی رو بدونه چیه خواهی چیزی نمیدونه حالا پس چه باید بدونه تو بعدی بوزید این یعنی باید چه بدونه خب یک من حالا یه مقدار از اهدافی رو که بعضی از تشکلات مطرح کردن کشوریان غیر کشوریان من اهدافشو میخونم ببینیم مثلا ما میخوایم، ما که گفتیم باید یه هدفی داشته باشه بعد ما به غیر به خودش همسوبتونه بکنه توی این هدف ولا نمیتونه کار بکنه میشه فرد کسی که میخواد به یه هدف برسه فردی میرسه یک نفره. اگر بتونه مسنع او فرادا اول مسنع نشد فرادا خب حالا بینید چه اهدافی رو میشه مطرح کرد من این اه اهداف رو از بعض جا گرفتم من تو میخورمشون پرورش روحیه عبودیت و بندگی و التضان عملی به احکام این بعضی از اهدافی که در بعضی از تشکیلات ها مطرح شده تشکیلات های کشوری هستند و غیر کشوری آشنا کردن با مبانی تفکر اسلامی انقلابی آشنایی با معارف قرآن سیری اهل بیت، ایجاد زمینه رشد و خلاقیت ایجاد انگیزه برای متخلق شدن به اخلاق اسلامی ایجاد انگیزه برای رسیدن به مدارج بالای علمی بالابردن روحی نشاد و شادابی مبارزه با تهاجم فرهنگی به وسیله ترویج فرهنگ اسلامی نمیخوام بنویسید میخوام فقط گوشتون آشنا بشه با این تهاجم دو قبلی بالا بردن روحی نشاد و شادابی بله بعد ایجاد زمینه در امر مشارکت اجتماعی و سازندگی کشور. این ما نمیخوام اینها رو توضیح بدم نمیخوام اینها رو طبیعیم کنم هم بگم که مثلا نکنم بعضی از هدف هدفاشون اینجوری زمین سازی برای آشنایی با مسیر آینده زندگی خدمت شما حضور کنم بعضی سانسور میکنم. القای حس مسئولیت پذیری ایجاد بستر مناسب و تربیت افراد و نخبه در مرحله های مختلف قرآنی، علمی، هنری، تحقیقاتی، ورزشی اینا. یعنی آدم های در هر قسمی متخصص درست کردم ایجاد روحی مناسب جهت روحی تحقیق ایجاد بستر مناسب جهت روحی تحقیق تعظیم شعائر اسلامی در جهت تأثیر گذاری در روی مناطق استحفاظی مثل اعیاد و خیار بتونید درست سازی بکنه که فضای قضای منطق شهر را بتونه عوض بکنه ایجاد روحی بسیجی در های بعدی آمادگی نظامی و دفاعی از این قبیل مبادنه احداث بسیار خوبی هستن که خدمت شما عوض بکنم بعضی تشکلات مطرح میکنن تو بعضی از ترهای کشوری هم مطرح میشه شه چیزای این یک شیوه این هدف حالا نکنی من گفتم شما یه هدف باید داشته باشید بعد برای اون هدفتون بتونید خودتون اول هدف رو باور کنید برای رسیدن با اون هدف آدمهای رو با خودتون هماهنگ کنید تدبیر کنید بری کنید تدبیر هم گفتم یعنی که این یک چیزی شه اون یک چیزی شه این یک چیزی شه این تدبیر کردم حالا یه هدف دیگه میگم این هدف رو دیدید ریز بود حالا یه هدف کلی پر میگم این هدف رو در بعضی از مساجد ارز کردم به مناسبت های مقام معظم رهبری یه فرمایشی دارن میفرمان که ما دارای پنج انقلاب ما دارای پنج مرحله است مرحله اول خیزش و انقلاب. یعنی که انقلاب بکنیم، شورش بکنیم، نظام شانشایی رو صحت بکنیم. این مرحله اول. مرحله دوم تثبیت. این نوشتن قانون اساسی. شکل چارتی درست کردن برای نظام. مثلا این مجلسی داریم و جمهوری داریم چی داریم؟ این, این شکل. تثبیت نظام. مرحله سوم دولت اسلامی. یعنی دولت یعنی چارچوب اسلامی باشن چارچکلی سوریه حالا ماددی شما میگیم مواد قضیقی است. دولت اسلامی داشته باشین توی قوانین هست که رئیس جمهور باشه میتونه به نیست باشه نه تو قوانین هست که هیت دولت باشه خب میتونه خب یه می دولت مثلا دوز باشه کی به کی من نویشتن که باید عادل باشه که خب پرونده داشته باشه این دادگو با دنبالشه اون داد دنبالشه. مجلس شما میتونی ادمی باشه که با آمریکا رابطه داشته باشه، که اسلامی باشه، اسمش اسلامیه. پس اسم من مجلس شورای اسلامیه. اما واقعا اینا اسلامیان؟ مجلس اسلامی، دستگاه قضایی اسلامی، دولت اسلامی، اینا اینا. دولت اسلامی میشه مرحله چندم؟ سوم. بعد میشه کشور اسلامی. بعد میشه جهان و تمدن اسلامی. مقام معظم رهبری می ما بین مرحله دوم و ثباب هستیم یعنی چی؟ یعنی ما همین دولت اسلامی هم نفتیم ما بین مرحله دوم و ثباب هستیم یعنی خیزش کردیم انقلاب کردیم یک شورش کردیم روزیم شاهنشایی ساقت شد بعد اومدیم قانون اساسی نوشتیم و توی قانون اساسی مشخص کردیم چی میخوایم چی نمیخوایم اینم یه مرحله الان هنوز دولت اسلامی تشکیل ندادیم یه بار این در میاد یه بار اون در میاد یه بار الله یه بار هم اونطوریه همتون بگواری که نگوی که تاغوتی بار ناغوتی یاغوتی یعنی یک حالت درست حسابی نداره ثبات ثبات نداره ایشون میفرماد ما بین مرحله دو هستیم بر یک جمله از مقام معظم رهبری جمله دوم مقام معظم رهبری در سال دهم ده انقلاب اون موقع که رئیس جمهور بودن موز جمهوری اسلامی با ایشون رابطه مشاحبه کرد و با نخست وزیر آقای میحسین موسوی و با آقای اردبیلی دستگاه قضایی رئیس مجلس آقای هاشمی رفیع مصاحبه کرد. خبوا که شما اگر ده سال برگردید عقب چه کار میکنید با این تجاربی که دارید؟ آقای تقریبا همه گفتن که بعضی کارا پشیمونی مونی ما میکردیم همون موقع که خورم آزاد شد آقای اردوین نظرشون بود نمیدونم آقای میرون یا تقریبا نظرشون بود آقای هاشون یادنیست واقعش اینها ها میگفتن که ما می میکردیم این کار رو نمی اون کار نمی با همین تجر اگه برگردیم 10 سالقب چه کار میکردیم؟ از مقام از اون رهبر گموگریس او سوال کردند. فرمو فرمودند که همه کارهایی که کار کردیم انجام می فقط یه کار من اضافه میرفتم میششتم مدیر تربیت میکردم برای احنامجا. اگر من اول انقلاب بود با این تجربی کلان دارم برنیگشتم میرفتم مدیر برای نظام تربیت. میکردم. مدیر یعنی چی؟ یعنی بلد باشه سیستم های مثلا وزارت راه چیه؟ بفهمه وزارت کشور بگه شهر چیه؟ شهرستان چی؟ از یه حرفا رو بره حفظ کنه؟ چیزای شکلی منظور اینه خوی یه شب تا روز بچه کنکوروی هم میشنه میخونه حفظش میکنه خود دیگه این خو منظور نیست مدیر یعنی همونی که اول عرض کردم بر خودش مسلطه بعد بر دیگران نداریم می خرنش. با پول می خرنش می ترسیدنش تحلیل نداره گینجه آلم نیست جاهله یه جماع علیه لوابش توی سر دراهی ها این بده یا این بده به این مسئله از یه آدمو خوب براتون بزنم آیا انساریان آیا انساری. آی انساری مسئول دفتر مقام حضرت این نوشتم برای حضرت امام گفتن ایشون گفتن که چه شما بعضی موقع اینا رو تایید می‌کنی بعضی موقع اونا رو تایید می‌کنی ما هیچ‌چینی آخر دفعه فهمیدیم اسلام آمریکایی کدومه امام فرمودن شما احساساتی هستید شما آدم خوبیا الان مسئولش آفرت یاقوت چون جوامع مطرح شد من دارم میگم تو سیف نور هست و تو تلویزیون رو روزا اما امام فرمود به مسئول دفترشون شما احساساتی هستید تشخیص نمیده من چینی گرم توی شلوک فلوقیت جیج میشه یکم آدم بدیه ها تشخیص نمیده بیره میفهمن اگه این شهید بیشتی برای کنه خود دعوه تمام میشه هی سرکله سرکله این به هم میزنیم کن هی رئیس جمهور با قبع قضایی قبع قضایی با رئیس جمهور خب دیگه قبع قضایی اگر احبان عوض بکنه دعوه تمام میشه پس اون میگم دلملاله حسا هر دو محکومه که دعوا میشه. این تشخیصش ایراد است. خود دید پرماشه آقای مروی رو که تشویق دور اینجا می گفت که مقام از دم رهبری تعریف میکرد تکرار میکنم پرماشه آقای مروی رو. این تشخیص نداره. مدیر فقط این نیست که بره سیستمای تشکیلاتی ارزش میکنه. تشخیص نمیده خوبه بدره. شیرو میخواد اصلا پیاده کنه. نمیفهمه چی بده چی خوب فالتی کرده. عالم نیست، جاهل تو نمیتونه کاری بکنه. بله نمازشو میخونه، حزب الله نمست، از شب تا طول ما رفت سر میز. کاری بعد نمیکنه. اما تشخیص دادم، جاهل. و اون مقامشون میفرمون مقام معظم می رهبری مسئول نماینده حوزه های نماینده آقا هستند در حوزه های علمی کشور. آید مر. ایشون میگفت که مقام معظم به رهبری فرمودن که من در مشهد دوود یکی از علمای بسیار علامه طوابای تشریف آورده بودن مشهد من یه جلسه باشون صحبت کردم بعد خیلی از صحبتام خوششون اومد جلسی، بعد قومدن. من نگور همون صحبتو اون دفتر را ادامه بده گفتم تو بحث بحث امور امور اجتماعی بود گفت باش شما چطوری یه اون ظلم چی چی چیز اینا باش توضیح دادم بعد کو یکی از علما آقای مروندی گفت من درش شما نبود نخواستم حسام بودن گفت یک از علمای خیلی برجسته و بسیار با تقوا که علام هم رحمت خدا رفت گفت تو اون جلسه که مطلب هله شو اگر این رو میکنه خب فلانی یعنی امام لچو داره ورده نبرادرش میگم که اونم که لچو افتاده میره فساد میکنه عقلش فکر میکنه که او که داره کارای خلاف میکنه سر الیچه امامه امریکا چیه انقلاب سفید چیه دونبول اینکه قضیه ترک پیش بیاد در ایران اصلا تحلیل محلی هیچ جنان عقل ای خدا کاشی خره تو میمدی اینجا میبستی علفه رو میخورده این علفه حرام شد این <تصفيق> قصه معروفی دیگه <تصفيق> <تصفيق> گفت چه آرزی داری گفت <تصفيق> آرزیم اینه حضرت موسا و پیش یه آرفی آرف به اسطلاح اون موقع نه اسطلاح اسلامی نه بمیگه خود بعد قطع آرزیم اینه که خدا خره بیاره بذاره بنده اینجا این علفه تو نو بفت اقلا یه خر خدا بیانی علفه رو بخوره حرام که خدا همین نقامی هم که بهش خیلی زیادشه. شد عقلی را دا لذا تو مباحث فرهنگی اگر یک کسی خودش این چیزا براش حل نشده باشند هیچ کاری نمیتونه میکنه خب چه با بکنه؟ ما مدیر میخواییم مدیر برای نظام اسلامی هدف از کار فرهنگی چیست؟ ایشون ستاشو خوندم؟ خلاصه از بیان مقام و مذهب رحبه تربیت مدیر تربیت مدیر مدیر حوزه مدیر مدرسه راهنمایی مدیر یک مسجد مدیر صدا و سیما وزیر نماینده مجلس نمیدونم وکیل قاضی معلم اینه مدیر به اینا نگم مدیر. اونی که معلم کلاس شداره نمیکنه آدم درست نمیکنه پرت پرت هر تپارت در شورای عالی آموزش و پرورش جلسه میگیرن تسبیب میشه در جلسی قبل که باید کتاب های شهید متحریه روش کار بشه تو آموزش و پرورش نماینده های دبیر های دینی میان تو جلسه این چه کاریه شما میخواید بکنی؟ این جرایش به فرده فردگرایی بحث کتابای شید و تحریب و دبیر دینی میگه فردگرایی اینا, در... اینا نماینده دبیر دینی چیز که اسلام میکنید چیمون نه بایی اقلش با یه تلبی... حالا نمیخوام همش اونا رو بگم با یه صحبت میکردم. سابقا تو حوضه ما بود دیگه نیستش کو کتاب فقط که تا شهید چرا کتاب تا شهید نمی نمونه. اینا که قرار میکنن از صحبت کردن و مشورت کردن. چرا کتاب شاید مت... شهید متحریم، آدمی که تا شهید متحریم بخونه، این فرعی ای شخص یاران میشه. عین هم حرفا میزنه. اما خبر نداره اون اینم میگه ها حرفشو عین همه اما از هم بیگانه. این از اون خبر رو ببینم از این اون نمیدونه نماینده تو حوزه داره. میگه آدم اگه بره کتاب شهید مطهری بخونه وابسته بیه، آدم آزاد باشه. مرید شهید مطهری نباشه. میچ تو زشت مرید معنا میکنه؟ بی مرید رو اینطوری معنا میکنه. کتاب شهید مطهری خونه مریدیه. میچ تو قلوچ مرید معنا میکنه؟ بعد از یک سال بعد که دیدمش، قاره بینا چی هست کتاب شهید مطهری خوندن باعث صبح صبحكم الله بالخير چند سرین آدم از این قلاق این میخواب برون مدیر بشه رو جامعه؟ مدیر نبه که مثلا پشت میز بشین منظورم این میز این میخواب برون کنی جامعه رو؟ خواب برون سر اون جامعه که بشه این ای چه مشکلی ما داری؟ این میتونه مدیر فرهنگی بشه؟ بیمه تو کلمه مدیر ایستاده ما؟ لذا مقام از ما ره میفرماد من اگر ده سال برگردم اول انقلاب میرم مدیر تربیت میکنم ما الان گیر کردیم برادران ما حکومت اسلامی نداری منطقه سوریه در موادش اشکال وجود داره لذا میبینی تو جامعه ما مشکل وجود داره چرا برز اقتصاد اینجوریه خویل دیوانه ژاپن جفن هم چی رو کنیم کارش کنی؟ اگر شما برید تو یه جلسه شرکت بکنید او آدم خوبه میگه آقا یه طلبه چرا نمیری انگلیسی بخونی؟ من رو نگاه کن؟ حرفای خوبه شو مخواهم حرف خوبه رو بریدونم حرفا بده خواه بده من رفتم به کسی گفتم که اگر بخوام برم دانشگاه یه آدم بسیار خوب اسم برم میشنم برش آدمیه تو صدا میاد صحبت میکنه چی میکنه چی میکنه آدم شخص من تازم ملبس شده برم تازه لباس برم. میشه. بشه بده اسم برنمیش بلا شکش رفتم بهش گفتم که اگر من بخوام برم دانشگاه یه دانشگاهی هم کنار درستان بخونم چه رشته خوبه برم گوبر پزشکی گفتم خب پزشکی هیچ تناسبی نداره با کلی که خب میخواهم که به حرفش بدم استدلالش رو بدم تو استدلالش میگم واسه حضرت علی حق است چقدر است به صداق که دیگه بعد گفتم خب این خود نداره با, با تلبگی گفت میدونی تو اگر فرده رفتی تو مدتب با امامه چقدر تبلیغه اندازه حوضر قبول بره و اندازه امامش هم. افکار شهید متحریم ماکو افکار آی جوادی آکو ایش اتا توی وادی نیست یعنی حوضر قائل نیست که میتونه سیاستگزار فکری بشه این عملا سکولاریس یعنی میگه تو پزشک باش فقط امامه داشته باش هیچ احساس مثلا برو رشته فلسفه برو رشته حقوق برو رشته روان اینا خب یه تناسوبی دارن دیگه میگه تو برو رشته پزشکی از کل حوزت یه لباس داشته باشی بس علمش بی علمش یعنی علمش مفید نمیدونه آدم بسیار خوب بسیار مزخبی یه حرف خوب دیگه شما نشنیدید یه حرفارو که من درم میگم؟ میگه که شما برو انگلیسی بخوم حرف خوبیه فرانسو بخون، آلمانی بخون، هفته خوبی ها اینا آدم باید به چند تا زبان مسلم بشه اگه یه پلده ای هشتاد درصد عربی رو یاد گرفته شما الان گرامر رو عربی رو بلدین دیگه نحو بلدین، صرف و بلدین مکالمه حکم دارید یه حالش بدی مکالمهش خوب میشه دیگه تمام میشه میگردی، روسته؟ این آدمی که یه حالش بدی الان مکالمهش خوب میشه بر میگم بار چرا؟ چون انگلیسی هست نمیخوام بگم انگلیسی نباید به خونه ها میخوام بگم مرعوب رو حرف میزنه نمیگه تو باره عربی رو یاد بگی تو فردا میتونی ببادی که شراعی خلیج عربی حرف بزنی الان ما بریم مکه مثل گنگای ای تو بکنیم تو بکنیم حرف تو بکنیم نمیگه میگم تو یه حال دیگه پیدا بگو گرامرت خوب بشه عربیت خوب بشه بعد برو انگلیسی هم بخون فرانسه‌ام بخون حرف خوبی، این اشکال نداره اینو نمیگه میگی چرا انگلیسی نمیخونی یعنی ما چرا انگلیسی نمیخونیم اصلا زایع این. به دانشجو 80 درصد در انگلیسیه انگلیسی رو رفته جلوتا درست؟ هم در درسش رو انگلیسیه تخصصش رو مختصا همش انگلیسی. و انگلیسی هم یه حالش بده گرامر انگلیسیام یاد میاد یه بساط چیز مکالمهشم یاد میگیره انگلیسیش کامل برای او مقدمش اینه که بر انگلیسی یاد بگیره تمام میشه الان ما مقدمی که عربی یاد بگیری ما یکم دیگه عربی کار بکنیم شش ماه دیگه مکالمه‌مون کمال شده حالا بعد برو حالا انگلیسی بخونم برو آلمانی بخونم مرعوب مرعوب 180 درصد عربی خوندم بیت واسه بر انگلیسی از اول بخونم چرا انگلیسی خوندید چلا شده اگه فرانسه رو خود دیگه قوها تو دیگه این مدیر بشه الان بعضی از مدیرای ما اینجوریه. همین الان اینجوریان. برو باش مشورت رو خود من برم طلبه بشم یا نه. قطعاً من صرفت می‌کنم. دو تا مدیران این مدیرا برای من بیا که من صرفت نمی‌کنم. اگه دو توش برای من آوردی من جلویشو سجده می‌کنم از اغومی که خلیفه الله هست. چون ملاچ پیشش سجده نمی‌کنن. مثلا آدم به آدمم جلوی آدمو سجده می‌کنه. کیا؟ برادران حضرت یوسف جلوی خب پس ببینین ما مدیر میخواییم این کلمه رو زود ازش رد نشید گیر کردیم کار فرهنگی که ما قرار انجام بدیم و تو مساجد داریم انجام می‌دیم. حالا کی گفتو تو مساجد؟ نه بعدم بحث میکنم ایناو شکلی هم ایناو من بهشون شکلی الان بعدم ایناو رو بحث میکنیم این کاری که داریم تو مساجد حالا هر جای دیگه ما میخواییم مدیر درست ما میخواییم مدیر درست کن. الان دانشگاه هایی داریم برادران توی ایران روحانی مسئولشه عکس مقام معظم رهبری رو به زوری زدن به زوری عکس مقام معظم رهبری زدن شاگرد اول در این دانشگاه از بچه های خوزی خودمون بوده شاگرد اول شد. تو کنکور و بردی شاگرد اول شده ها مدیر دانشگاه روحانیه او همین مطرحیان هست تو مصاحبه رو روش کردن چرا؟ از آیت الله نسبه دفاع کردن اه بشن حالا شما فکر میکنین چی تحمیل میده این دانشگاه مدیرهای ای طوری داریم به اینا میگن کاتسازی دارن کاتسازی میکنن اونا دارن کاتسازی میکنن ما داریم چی کاری میکنم داریم خاطبازی میکن. پس کی ما میخوایم نشون بدیم حکومت اسلامی چه شکلیه؟ همین که باید رو دیگه. ما علمیمونو باید حل کنیم. ما باهاش رو واد حل کنیم. ما باهاش رو باید حل کنیم. هنوز نفسم مسلط نیستم. نمیتونم بگم که چیش کن کنترل کنم. زبان رو هم کنترل کنم. هنوز خود نمایی خودمو خودمو تعریف میکنن. تمام شد؟ تمام شد رفت. دیگه انتشار دیونگه. خب پس در بحث مدیریت فرهنگی یک مدیریت این گلچیدن یعنی که تدبیر کردن سیاستگزاری کردن با توضیحاتی گفتن زمان شناس بودند تغییر فکر حاکم شناسایی فکر حاکم تحلیلگر بودند تو هر محیط خودش تشکیچی و نظام ما بین مرحله دو و سه قرار گرفته اگر مدیر تربیت نکنیم 100 سال دیگه همین شکلی می‌مونیم جمهوری اسلامی پاکستان جمهوری اسلامی پاکستان چه روحانی بشیم چه دانشگاهی بشیم یک آدم الکی آزاد دریم حالا خودمون الکی می‌شیم میریم جهنم هیچ اون به جهنم مملکت خراب یکی مدیر وجود نداره که دولت اسلامی درست کنه یک مدیر درست نمیشه ما مدیر میخواید چه و چه دانشگاه به معانی که بعدن بیشتر باید توضیح بدیم و الله علیه و محمد و عالد تاخرین محمد و محمد و